بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند آمین حامی و کتاب المبین به این کتاب آشکار این انزلناه فی مبارکه که ما آن در شب فر بارکت ناقل کردیم. ما هم برای انتا کنندگویی. یا یفرق در آن شب که هر آمده به حکمت خدا بان تنقیق کند. آمین من عندنا این نا کننا مرسلی فرمانی بود از نارجه ما مارت رسولی رحمتا من ربک انه هو السمیع العلی انها همه بخاطر رحمتی از توی پر که او شنم انده رب السماوات وما بينهما این کنتم موقنین پر برکار آسمن ها و سمین و آنچه در میان آنها اگر احر یقین استید لا اله, اله الا هو يحيي ويميت ربكم و رب آبائکم هیچ اولی جز معبود نیست. زنده می کند و می می بردار شما، پروردگار پر مفسیری شما. بل هم فی ولی آنها در شکند و با حقایق باطل می کنند. پس منتظر رویت باش که آمان دود آج کاغ پدید آورد يا الناس هذا عذاب الذي حن يمرتم لا فراو نييرا ان عذاب دعناكي لقدنا كيف عن العذاب ان مؤمنون بكم جان طب قالوا اظهروا ما بطرفكم كإيمان ايمان يا ان لهم الذكر وبرجا کنها با از کجا متدکر می شوند با این که رسول آفکار به آن آنها آمد سپس از او روی گردان شدند و گفتند دیوانهی که دیگران به او تعلیم می دهند این اکاشف العذاب ما کمی عذاب دران دران دران دران را برطرف می سازیم ولی باز به کارهای خود برمی گردید ما آنها ما تنها انتقام میگیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت آری ما تنها انتقام می گیریم وَلَقَرِفَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ما قبل دينها قوم سرعون رأى آزموده ورسول بطردوار بصرات انها آمد أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين كأي بندان خدا أنت بشمار درسول آه انجام دهید و در برابر من قسم شدید که بیگمان گمان من فرستاده امین برای شما هستم و در تعلمون الله برابر خداوند تکبر نبرید که بیگمان من برای شما, شما دلیل رشمی آورده ام وربكم ومن و من به پربردار خود و پربردار شما فناح می برم از اینکه مرا تانتار کنید و اگر من ایمان نمی آبرید دعا از من کنارکی می کنید نصابتی از یه سر باز کارش داد که اینها کامی مجرمان. به از این عیدادی لیلن این نه متبعون. و او دستور دا داده دا شد، مرا نمرعش باون حرکت که آنها به ما می آگن. و طرق البحر رهوا، این نه جند مغرقون. دریا را آرام با گشاد بگذار. که آنها بلشکر قرد غی خواهند بود کم ترکو من <جنّات ورون> و که به چهار باغها و ششمها که از خود به جای گذاشتن و ضرور و مقام کریم و دراتها به قطعهای جالد و کرمتیمه و نعمتیم دیگر و نئمک هایی در که در آن متشنین بودم اول و آورد نا قوم این چنین بود ماو تراژه آنها و ما اینها را میراث برای اقوام دیگری خرطاطی. که مابدت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا ضني نآسمن در آنها گری بنا الْزَمِينَ بَنَّا بَعْنَهَا مُهْلَكِيْتَا وَتَشْوَى وَلَقَرْنَجْجَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُمِينِ مَا تَنِي إسْرَائِيلَ عَذَابَ الْعَذْلَبَارِ نَجَاءَ الْبَشِيْرِ مِنْ فِرَاعُوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ از که بیگمان مرد متکبر و از اف بود ما آنها را با علم پیششت بر جهانیان برگزیدیم و بدتری دادیم و با آیات به آنها دادین که آدم‌ویش آشکار بود. اینا اولاً بیگمانی، این همیگان. اینیا <احاولی> <متنع> ایلا مرک الاولى و ما نحن همان اولی و هرگز زنده نخواهیم شد. بَأَتُوْبِي أَبَايَنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أجر رأس مكويت فدران مارجندسون. أهل خيون أم قوم تباً والذين من قبلهم أهلت إنهم كانوا مجرمين آیا آنها بهترند یا قوم طبع و کسانی که پیش از آنان بودند ما آنها را حلاف کردیم چرا که بیگمان مجرم بودند ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این بود به هدف نیا ما غلقتناهما الا بالحفث ولكن لا يعلمون ما انظر فقد بحق افریدين بل اكثر انهم نميدان ان يوما تصلب قاطهم اجمعين ديكمنظر جدا في جدال دي بعداك یوم لا یؤمنی مولا لنا مولا شیئا وراهم که هیچ دوسی کمتری قمتی بدوس نمی کند و هیچ تو یاری نمیشوند الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم مگر اینکه خدا او را مورد رحمت قرار داده و بیگمان او عزیز و رحیم است این درخت زقوم غذای الافيف است، همانند فلز گداخته در شکابانی جوشد طوال الحميم جوشش همثل آب سوزان این فاتلون مجرم را بگیرید و تو شخص طباش کنم ثم بر سر من از عذاب سوزان برزید لو انك انت العزيذ الكريم باوقف نمی شبد بچش که بکندار خود به جا خود رفمند و محترم بودید این همان چیزی که پیوسته در آن سردید می کردید دیگو من فرهید کاران در جایگات عام و امانی هستان دیلن نات و عیون در میان باغها با و ششمها یلبسون من سندس و ایترق متقابلین انها لباغهای از حریر نوتاک و دفیل میخوشند و در, در مقابل یفتیکار میشینند کذالک و دووجناهم بحور حول این چونینن به هشتیان و آنها را باهور و لعیم تسریج می کنن یدعون پیها بکل آنها هر نوع می وی را بخواهند در اختارشان قرار می و در نحاضیت امنیت بسر می برند لا یدعون پیها الموت إلا الموت تلولا هرگز مرگی جزهمان مرگ اول که در دنیا چشیدهاند نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند این فضل و بخششیس از سوی فروردگارد و این پیروزی دیر بزرگی. فَإِنَّمَا يَسْتَغْنَاهُ بِحِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ ما قرآن را تو اولتان ساختی تا متدکر شبان اما در تزیران شدان منتقر باش انخانی